با بهترین آرزوها برای همه شما عزیزان دل تازه های بهداشت و سلامت این هفته رو خدمتون عرض میکنم امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره از یک مقاله در مورد کبد شروع میکنیم کبد یک عضو حیاتیست این دستگاه فوقلاده سموم بدن را تبدیل به زاییات کرده و بدن آنها را از طریق اضرار و مدفوط دفت میکند اما این کار چندان راحت نیست مخصوصا با وجود انوای سموم در زندگی های مدرن امروزی در این حالت کبد ضعیف و تنبر شده و به جای دفع سموم آنها را در بدن و به خصوص در سلول های چربی اطراف هم ذخیره می کند این علائم به شما هشدار می دهد که کبدتان ضعیف شده است یک افسایش وزن عجیب اگر کبد ضعیف باشد هر چقدر کم که برای لاغری تلاش کنید کمتر نتیجه خواهید گرفت تمایل بدن برای ذخیره سموم فیلتر نشده تنها یک دلیل برای این مسئله است دومی مسئله آلرژی کبد ازویس که آنتیبادی ها را برای مبارزه با آلرژی ها تولید می کند هیستامین تولید شده مغز در پاسخ به آلرژی ها در صورتی که کبد تنبل باشد این هیستامی ها در بدن ذخیره می شود و به مرور زمان با تج حساسیت در بدن ایجاد می مثل سردت، خارش و همساله این خستگی مزمن خستگی مزمن یکی از نشانه های نارسایی کبد و مصومیت است بوی, بوی بد بدن و تاریخ زیاد کبد مانند یک کامپیوتر است وقتی که از آن زیاد کار بکشید گرم و ضعیف می شود از آنجا که کبد یک عضو بزرگ در بدن است در صورت گرم شدن این گرما را به سایل نقاط بدن منتقل می کند و بدن نیز برای خونک شدن عرق می کند جوش های مقابم سموم مزاحم، بالاخره موجب به همخوردن تعادل هرمونی بدن خواهد شد این عدم تعادل هرمونی ها موجب به, به،, به بروز آسیب های پوسی ماننده آکنه های پوسی در فرد خواهد شد و بوی بد دهان اگر کبه تنبل باشد هر چقدر هم که مسواک و نقل دندان استفاده کنید این بو از بیم نخواهد رفت. بوی کبدی بیماری است که در صورت تجمع سموم در کبد به موجود می آید و دهان بوی مطفوع و کپک می گیرد امروز مطلبی براتون آماده کردم درباره اینکه چرا از قدیم می گفتن که باید پنیر را با گردو بخوریم. نان پنیر و گردو از جمله خوراکی های مورد علاقه مردم است اما اگر اما آیا پنیر موجب کندی ذهن می شود و چرا باید با گردو گردو را با پنیر خورد و چرا خوردن پنیر موجب سردرد می شود پنیر مادی سرشار از پروتئین و کلسیوم است و مقادیر زیادی هم فسفر دارد علاوه محتوی درصدی از تمام مواد مغذی موجود در گوشت هم است از این رو گیاهخاران به جای به جای خوردن گوش از پنیر استفاده میکنه. در این میان افراد زیادی اعتقاد دارن که پنیر موجب پنیر موجب کاهش هوش میشود. در پاسخ به این افراد باید گفت پنیر حاوی ماده ای به نام تیرامین است که این ماده میتواند در صورت عبور از صد خونی مغز وارد مغز شود و کاهش عملکرد ذهنی فرد را در پی داشته باشد. هرچند در عمل باعث کاهش هوش فرد مصرف کننده نمی شود چرا که در بدن در بدن ما آنزیم خاصی وجود دارد که به محص تماس با پنیر آن را تجزیه می کند و در صورتی که نقصی در عملکرد این آنزیم وجود نداشته باشد و مقادیر پنیری که فرد می خورد بیش از ظرفیت خونسایی سازی این آنزیم نباشد این آنزیم به راحتی می تواند از پس مقادیر معمول تیرامین برآید و مانع ورود این ماده به مخ شود در این میان از آنجا که آنزیم تجزیه کننده تیرامین پنیر برای انجام عمل خود به مس نیاز دارد بنابراین اگر بتوانیم مقادی مقادیر مورد نیاز مس را در اختیارش قرار دهیم می از کارایی بیشتر آن بهره شویم. این کار را با میتوانیم با خوردن گردو همراه پنیر انجام دهیم در واقع از آنجا که گردو حاوی مس است می از این از این طریق مس مورد نیاز را تامین کند مسئله دیگر تعادل کلسیوم و فسفر بدن است. اگر این تعادل به هم بخورد یعنی مقدار کلسیوم بدن از فسفر بیشتر شود این کلسیوم اضافه می باعث کاهش فسفر در دسترس سلولهای مغزی شود. این در حالی است که سلولهای مغزی به کاهش فسفر حساسیت دارند و این مسئله می تواند باعث باعث کارکرد کاهش عملکرد سلولهای مغزی شود. این در حالی است که پنیر هر دو ماده معدنی کلسیوم و فسفر را دارد ولی میزان کلسیوم آن بیشتر است و در صورت مصرف بیش از اندازه آن این تعادل به هم میخورد و مقادر کلسیوم از فسفر بیشتر میشود لذا از فسفر های مغزی استفاده میشود گردو تا حدودی هم حاوی فسفر است که با مصرف آن میتوان به فسفر مورد نیاز خود دست پیدا کنید و این تعادل را به حالت اول برگردانید پس این مشکل نیز با مصرف گردو حل خواهد شد. اما دلیل اصلی وجود باورهای اشتباهی مبنی بر مصرف پنیر از آنجاست که این ماده غذایی از جمله لبنیاتی است که اگر صبح به عنوان صبحانه مورد استفاده قرار گیرد باعث افت فشار خوند و به اصطلاح فرد دچار سردی می شود البته این افت فشار آنقدر نیست که فرد آن را احساس کند ولی اثر خود را میگذارد به این ترتیب تیز زمانی که این افت فشار رخ می دهد خون کمتری به سلول های بدن جمله سلول های مغز می رسد و این باعث می شود تا چند دقیقه یا چند ساعت اول مغز تا حدی قدرت تجزیه و تحلیل کمتری داشته باشد و فرد به نظر کمی کمهوشتر به نظر برسد. ولی این قضیه موقت است و با, با برگشت فشار خون با حال عادی خود این مسئله نیست برطرف می شود ویروسها هنگام صبح خطرناکترند هن. گروی از متخصستانعلومپزشکی دانشگاه کمبریج در یک مطالعه جدید دریافتند که ویروس ها وقتی به هنگام صبح قربانی خود را آلوده می کنند به مراتب خطرناکتر هستند. در این بررسی آشکار شد همچنین در صورتی که بروز عفونت از صبح آغاز شود، شدت تاأثیرگذاری ویروس ها ده برابر بیشتر خواهد بود. همچنین مطالعات روی حیوانات آزمایشگاهی ها تغییر در ساعت زیستی بدن نیز، می ناشی از کار کردن در شیفت شب باشد، آسیب پذیری را در ویروسها ویروس ها افزایش می داد. متخصصان انگلیسی معتقدند این یافته ها می به شناسایی شیوه جدیدی در متوقف کردن بیماری های همگیر منجر شود. ویروسها ها برخلاف باکتری ها یا انگل ها کاملا با بهرهبری از سیستم داخلی سلور ها به منظور تکثیر شدن متکی هستند. اما این سلور ها به عنوان قسمتی از الگوی 24 ساعته بدن با عنوان ساعت زیستی تغییر می میکنند در این مطالعه موشهای آزمایشگاهی به ویروسهای آنفلانزا و ویروس هرپس که می تواند واجم بروز انواع بیماریا شود آلوده شدند و در نهایت مشخص شد در موشهایی که هنگام صبح به ویروس آلوده شده بودند سطح ویروس نسبت به هنگام غروب ده برابر بیشتر بوده است در واقع هنگام غروب ویروسها از شرایط لازم برای بهره ب... بردن از سیستم داخلی سلول برخوردار نیستند و آخرین خبر در مورد رابطه خالهای بازوی راست و امکان ابتلا به سرطان پوست تعداد خالهای روی بازوی راس میتواند مشخص کننده میزان آسیبپذیری افراد نسبت به سرطان پوست باشد به گفته محققان 11 خال یا بیشتر میتواند یک پیشگوی قوی به حساب آید به گزارش خبرگزاری فرانسه نتیجه تحقیق که در نشریه تخصصی امراض پوستی در بریتانیا منتشر شد می گوید که تعداد خال‌ها در بازوی راس بیش از هر نقطه دیگر در بدن امکان ابتلا به ملانوم را پیش‌گویی می‌کند هر چه تعداد خال در بدن بیشتر باشد امکان ابتلا به سرطان پوست بیشتر میشود. دانشمندان دانشمندان کینگ کالج در لندن عقیده دارند که نتایج این تحقیق تحقیق تازه میتواند به پزشکان کمک کند که افراد در معرض خطر ابتلا به سرطان پوست را شناسایی میکنند. این تحقیق بر روی بیش از 3500 زن دوقلوی سفید پوس در بازی زبانی 8 ساله انجام شده است و در طی آن تعداد خالهای 17 نقطه بدنی این افتاد افراد شمرده شد مرحله بعدی انجام این تحقیق بر روی 800 زن و مرد مبتلا به ملانومای سرطان پوست بوده. زنانی که حداقل اقل 11 خال روی بازوی راستشان داشتن بیشتر امکان دارد که بیش از صد خال در سراسر بدنشان وجود داشته باشد که به گفته محققان یک پیشگوی قوی برای سرطان پوس به شمار آید. تحقیقات مشابهی که بیشتر در استرالیا انجام شده بود می گوید که تعداد ده خال بر روی بازوها یازده برابر امکان ابتلاب سرطان پوس را افزایش می دهد به ناز طبیبان نیازمن مباد تندرسیتون پایدار.